بسم الله الرحمن الرحيم بنو حبله بن قبه الله بالله الهلي الناصم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد بنو حبله بين جهه طيبين طاهرين الى هداه المهديين المنتجبين صلي ما الله في السماءات ونا رزين بالله من الشين تال رزين. و لمن قوم لا تأخذهم في الله لومت الله ام سيماهم سيم مصر دقيق. و كلام العبرار. و ماور الليل و منار النهار. متمسكون به حمل قرآن یحیون سنن الله و سنن رسوله لا يستکبرون و لا يعلون و لا يقلون و يفسدون قلوبهم فالجنان و اجسادهم فالعمل تنفیق اسم حمد الله خدمت عزیزان برادران و خالان و در مناسبت و ایام متعلق به سیدت و نساهل آلمین صدیقه تاهر سلام الله علیه بخش دومی از مجموعه خطبه نورانی و بدیل، امیر ملک بلایت مولانا و مختدانا امیر المؤمنین رو با شماره 192 در نحجل بلاقه بازگو می کردیم که بخش پیشین این را در نوبت قبلی که افتخار حضورد در جمع عزیزان داشتم در ایام ماه سفر پیشین سال گذشته مطرح کردیم آن بخش انتهایی این بیست جلسه را خدمت دوستان عزیز بازگو میکنیم و خطبه به حول قبعی الهی به پایان می رسد. امیر بعد از آنکه که تمام مباحث را مطرح کردند یعنی موضوع و محور اصلی خود به شیطان شناختن شیطان ویژگی ها و خصوصیاتی که انسانها از این مسیر به شیطان نزدیک می شوند و ساووس شیطانی و سازوکارهای شیطان در ارتباط با انسان ها و در انتها کار به شمه از حالاتی کشید که از ارتباط خودشون با نبی مکرم مطرح کردند حالات پیامبر رو گفتند استکبار پیش روی رسول خدا رو مطرح فرمودند و اون ماجرای و اون اعجاز ویژه‌ای رو که در طی نوبت قبل خدمت دوستان نسبت به اون درخت بازگو کردیم و چهار نکته‌ای که تاکید امام بر آن بود استکبار و لوف کفر و توف. چهار چهارویجگیی که دور میکرد انسانها را از پذیرایی حقیقت و پذیرش ایمان روشن و موجهی که پیامبر برای ایشان برمغان آورده بود پایان خطاب, خطاب امیر حال هوای دیگری پیدا میکند عزیزان یعنی امام با این جمله که و اینی لمن قوم من هم از همان تبارم، من هم از همان جماعت و قبیلهی هستم که این ویژگی ها را دارند. دوازده ویژگی رو امامت مطرح می کنند. عنوان خصال و خصوصیات انسان که به قلده رسیدند، الگوهای بشری، فقط جمله ای رو من پیش از ورود به این دوازده ویجگی و بررسی سخن از بازگو می‌کنم، کنم محضر دوستان با اون این است که قبلا هم گفتیم به شکل گذران که اگر امام در اینجا و در این خطبه اشاره فرمودم که من در کودکی چنین کردم در جوانی مثلا مبارزات این چنینی یا در محضر پیامبر این رشادت ها و وظائف رو انجام دادم انسان عزیزان به جان این میرسد که سخنی که میگوید در حال هوای خیش در حال هوای خود نیست دقت به این جمله بفرمایید خود صاحب سخن میفرماید تسکیه تلمر نفسه قبیه این که انسان از خیشتن بگوید و ستایش خود کند قبیه است. نمیپسندد اغل شهر چنین رفتاری را در ادامه میفرماید الا ما یعرف به این قدر روح مگر اینکه هدف آن است که اون نعمت های موجود را و اون داشته ها را به دیگران عرضه کند توجه دارید یعنی این جایی که دیگه از فضای نفس و خود برون می آین. و به بیان روانتر را عرض کنم خدمت دوستان خود شیطان این و نارواست اما اگر خودی باقی نماند اگر خودی باقی نماند به جای خود ستایی جای اون خدا گویی نشست چه کسی ماننده بیرود مؤمنین و اونها که به این مراتب رسیدند مقامی رو احراز کردن عزیزان که چیزی به نام خود در وجودشان در پیشگاه پروردگار باقی نمانده است که از خود بگویم. اینا اگر آنچه را بازگو میکنند، نه این است که بخواهند شخص خودشون رو با یه ویژگی ها و خسلت هایی مطرح کنن بلکه تمام ذکر نعمت ها انتاف و آنیست که خداوند با بنده خیش عمل کرده است و در حقیقت دیس که دارن مطرح میکنن کنن محامد خداوند رو دارن میگن، نه اینکه از خیشتن بگویند و ویژگی های هنچنانی رو بازگو کنن این است که شما در امونده سخنان پیشوایان دین می بینید شما بسیاری از عدیه که می بینید سریعتن میکنم زیارت جامعه کبیره چیست در این زیارت جامعه کبیره که وجود نازنین امام حادی به معتبرترین سندهای موجود به یادگار برای ما گذاردن مگر این زیارت رو که باز می کنید یه فصل طولانی و مفصلی در جایگاه احلو بیت نمی بینید یعنی اصلا منشور امامت دیگه ما جامعه تر از زیارت جامعه کبیره به عنوان منشور امامت نداریم در شیه این بالاترین منشور امامت است مقاماتی که در اینجا مطرح می شود برای بیت اینها چیست؟ آیا ستایشی است که این خواندان در مورد خودشون دارند یا در آن مطرح می کنن که خداوند با انسان این موجود خاکی در بالاترین حد چه می و چه تافی به او میدهد چه حالاتی به فتح الله و بکم یختم و بکم یونن جون و بکم یمسک و سما و العرض وجود آدمی به میرسد که های دیگر الهی از انسان آغاز میشه به انسان به پایان میرسد آسمان به اراده انسان میماند زمین به اراده انسان میماند به چه مدنونی می میرسد انسان در پیشگاه حضرت باری تالا اون هم فقط بایی عنوان و ویژگی که هم به امرهی یعملون اون که تمام وجود انسان و بندگی تمام وجود آدمی رو میگیرد خب این انسان میشود خلیفت الله به اون معنا و مجری فرامین و عوامه رو اراده خداوند در عالم وجود و هستی و در کائنات پس نوع این ها و صفاتی که گفته میشه یه شرح و بیانی است از انتاف حضرت باری تا حالا وجود این بزرگواران یا آینه ای میشه که میتابد باز میگردن انعکاسش رو دارن توضیح میدن برای مردم ها و به تربیر یه مدلسازی از اون برون میاد با این دیجگی مقدمه ارزم کنم فرمود لمن من از گروه و جماعتی هستم که یک اولین خصلت لا تأخوضهم فلله لومتلائم هیچ ملامت و سرزنش سرزنش کنندگان در ایشان کارا نخواهد بود و اصل نمیگذارد. میگذارد این چه جمله است که همون ابتدا وجود اون باره که مطرح میکنن استعزار دارید که انسان هنگامی که هدف خودش رو شناخت و دانست عزیزان و به سوی اون هدف روشن و مبچه حرکت کرد بدون تردید صدها مانع برای او پیش میآید آید که دار رو از رسیدن به هدف باشد این انسان است که آنچنان هدف را جدی بگیرد در اعماق وجودش فرو رفته باشد و انگیزه کافی داشته باشد که بتواند خودش رو بدون هیچ تعللی با تمام سختی ها و دشواری ها بر پیش می آید به مقصد و مقصود برساند این یه اصل در تمام مسائل زندگی حالا اگر اومد هدف به بزرگی تمام وجود و هستی شد یعنی نال الله و یعنی نال راجعون یعنی رسیدن به حضرت باری تعالی شد فملاقی لقا الله شد در این مسیری که انسان تا کوی جانان و رضای حضرت دوست حرکت کند، در در ره منزل لیلی که خطر هاستیر حالا دیگه اینجا چه موانعی وجود داره در این سنگ لاخ بادیه چه ناهمواری هایی دیده می شود که مانع انسان میشه یکی از اینها انسان رو از مسیر است که باز دارد و نگاه دارد در این وادی که انسان های موحد شناختن مسیرشون رو. رضای خدا رو بر رضای خود مقدم داشتن و دانستن که برای او زندگی میکنند به سوی او زندگی میکنند بالله فلاح الله دانستن که دارن به سوی اون حرکت میکنن یکی از موانعی که پیش میاد عزیزان پسند یا عدم پسند مردمان و دیگران است این خیلی بحث مهمی است. اینو خیلی تجربه کردیم در زندگی بسیار اقدامی رو شروع فرمودید. خیلی از موارد پیش آمد یا کارها و اقداماتی رو شروع کردید. خواستی تصمیم بگیرید، بررسی هایی کردید، یا عملش حایسنی و نیکی رو انجام بدید. اما نزدیکان شما، همسر بزرگوارتون، شوهر گرانقدرتون، فرزندان عزیزتون، دوستان گرما به گلستانتون یه جمله به شما گفتند. فرماندار رو به کناری گذاردید تمام دیگه اقدام نکردید. گفتند مگر شما کفیل مردمی، مگر شما زامن اجرای مقدومید که چنین کاری مگر شما پیغمبری تمام مت بخورید مگر کمن کسانی که از شما صدها بار موقعیت علم ثروت بیشتری دارن شما چرا این کارا رو بکنید؟ اثر کرد، موندید، از این نوعش گاه عزم رو جهاز کردیم، کمر رو بستیم، یه تغذیبی رو شروع کردیم، یه کارهایی رو شروع کردیم باز از جور دیگری با ما مواجه شد گذشت زمان بعضی از مسائل جامعه رو ببینید از اثر ارتباطات دنیا اینطور اجتماع اینطور نمیدانم. شما هنوز در فکر این این کاغایی نمیدانم چنین مسئلهتون انجام شد این گیر شرعی شما شما هنوز در بند این مسالدید. این خارخار ذهنی موند موند امروز نه فردا هفته دیگر نه ماه دیگر دست شستید بستید گذاشتید سر تاق تمام یعنی به یک پسند و ناپسند در کل مسیر زندگی گاه بینید از ایزان تغییر ایجاد میشه چه باید کرد؟ باید این وجود انقدر به هدف و مسیری که میرود مؤمن باشد و سایه عنایت الهی رو در این وادی اون چنان بر وجود خودش ببیند و رضا و پسند و اون رو به شکل محض در مسیر خود که هیچ سخن حدیث عرف نکند کند او را نتند کند او را بلکه به تمام وجود سیر خودش رو ادامه بده. و از اون طرف این رو هم میدانیم من چاره نیست ارزی میکنم این رو در زبان منصومین فهمدن رز رزناز لا تلك و ناز لا حضبت. هیچگاه جوری نیست که شما بتونید رضای همه مردم رو به دست بیاورید. یعنی اونهایی که به قله بلند انسانیت و رزننا رسیدند، و اون قلب و دلهای های انسان های شایسته خدا رو تسخیر کردن و شدند استوره های بزرگ و استوانه های بزرگ فضیلت و شرافت علم معرفت سخاوت جود شجاعت کرم تیر بر سرشان خورد و محاسنشون به خون سرشون خساب شد سرهاشون بر فراز نیزه رفت خب مگه اینها رو مردم انجام ندادن اینها رو مردم انجام دادن که رزناس ناس لا تملک و السنتون ناس لا تزبت و زبان مردم هم قابل بستن نیست پس تکلیق خودتونه بدونید بدونید اگر آمدید و تشخیصتون درسته و در مسیر خداوند قرار دارید طبق معیار عقل و شرعتون باید عمل کنید اگر نزدیکترین کس شما هم پسندید فبها نپسندید نپسندند و الا بدونید یه قدم تو زندگی نمیتونیم برداریم چهل سال نگاه میکنیم میبینیم باز همون جا که هستیم هستیم موش دوز در هم بار ماست گندوم عمال چهل سال کجا هست میبینیم چهل سال نماز روزه یه قدم جلو نرفتیم همون جا موندیم فرمود لا یسیر العبد ابدا کاملا انسان انسان کامل نمیشه لا یسیر العبد ابدا کاملا حتی یسیر المدح و الذم سبا تا جایی اینکه مدح مردمان یا ضم مردمان در نفس او و در وجود او یکسان باشد موجب تغییر مسیرش نباشد توی محیط جدید وارد میشه این دوست عزیز من یه مقداری تغییرات و محیطی مطالبی که بهش گفته میشه میبینید اصلا همه چیه نه پوششش شد شد بلکه همه ادبیات کلامیش عوض شد اصلا یعنی مثل یه آبی که میریزید تو هر ظرفی بعد شکل همان ظرف را میگیرم نیست اون جوهر درونی نیست اون صلابت باور نیست اون اراده راسخ و جدی شناختن جدی هدف است استواری در پای اون است دادن در مسیر اون دچار ضعف و تزلزل فرمود من از کسانی هستم چون اولین نکته بود همین باشه که ما میفرماین من از کسانی هستم که هدفمو دونستم من از کسانی که میدانم به کجا میروم و چگونه باید بروم و در این راه هیچ تزلزلی در وجود من نیست انتهای جله عمل مشکانت بعد از اتمام تفسیر حمد این حدیث رو من نوشتم که وقتی وارد شد و رسول خدا نشسته و علی راست پیامبر نشسته است و فرمان بدهان عمار فتنه در میان امت من پیش میاد چنین می شود چنان می شود فرمان دن امار ام ازاره ای تناس همگاه مردم همه دارن توی یه مسیر حرکت میکنند، اما این مردی که اینجا است با دست به زانوی علی زدن. این مرد تنها در یه مسیر داره حرکت میکنند. یعنی اگر تمام مردم هم مدامت کنند علی را و مخالفت با او بکنن حنگامی که تشخیص داده از مسیر حق و ثباب خودش رو بر اساس معیارهای وحیانی و اقلانی تغییری در وجود و دیده نمی شود به خدا سوگند اگر تمام عرب مقابل من بیستید نما ولی تو من هم فرارا پشت نمی کنم مسیرم را غز نمی اگر اما چنین صحنه ای رو دی خل ناز رها کن مردم را فصل لوکمودین سلاک علی برو تو همون مسیری که این مرد تنها داره میره لا تاخذوه فی الله نومته لائم من از کسانی هستم که ملامت هیچ ملامت کننده در من کارا نخواهد بود یک از منبرین اولین ویژگی استواری و صلابت در مسیر راه و مقصد و هدف دوم سیما هم سیما صدیقین از هایی هستم که سیمای اونها سیمای صدیقین هست کلمه سیما رو ممکنه با صدا و سیما اشتباه کنیم یعنی سیمای فارسی رو ببینیم نه این سیما سیمای است این همان است که خدا در قرآن میگوید محمدون محمدون محمد رسول الله والذین ماهو اشد و الذين ما هو اشدوا على الكفار رحمهم بینهم تا اونجا که سیماهم فی وجوههم من اثر سجود این پیامبر و یاران او دلهاشون بین هم نزدیک در قبال دشمنان قدرتمند و قرسلابتی استادند و سیماهم فی وجوههم در چهره ها اینها آثار خضوع و خاکساریشون در پیشگاه خدا سیما شده وچ یعنی چهره سیما یعنی علامت نشانه وسم واسم. یعنی نشانه و علامت جا به جا میشه قلب و ابدال میشه میشه سیما سیما یعنی نشانه و علامت کسانی که سیما هم نشانه این ها که میشه خوب از این نشانه ها شناختشون نشانه های صدیقین است کلمه صدیق چیست؟ صدیق صادق نیست راستگو نیست بحث گفتار نیست اینجا رو گفتار نیست در صدیق صدیق من صدقو قوله فعله آن کسی که گفتار او تعیید کننده رفتار اوست و رفتار و او تعین کننده گفتار اوست اینو میگن صدیق یعنی اون کسی که هیچ تغایر ظاهری و باطنی ندارد به تمام اون که معتقد است میگوید و عمل میکند و آن که عمل میکنه و میگه این اعتقاد و عقیده هست به چنین صفایی از باطن و ظاهر رسیده است. من از کسانی هستم که به اینجا رسیده خب میدونید در قرآن وقتی که خداوند میخواد در اوج بندگان خودش رو اون صف انبیاء و شهدا و ها رو مطرح کند در کنار این عنوان چارم چیست؟ صدیقین هم وافی می‌خواد بزرگانش رو یاد کنند صدیق و امه او صدیقه ما در انسان انسان صدیق و صدیقه است یعنی یه بالاترین حد برای انسان اینه که به یه صفایی و یه زلالی از روح برسه که این باور درونی، اعتقادات درونی و تمام اندیشه‌های درونیش با شخصیت بیرونی او هیچ تغایری نداشته باشه گفتار و رفتار و بلاخره وقتی شاهری در این از دیار بزرگ شما بوده است عزیزان به نام توغرایی اصفهانی هر شما به وزارت هم رسید بعد به چوبه دار سپارده شد این توقرائی اصفهانی به حدی از قدرتمندی در عدب یا تحرب رسید این فارسی اصفهانی به حدی خب این الان کلام یه جرال کلام میشه اما خب این توانمندیف استعداد این مرزوبون و این مردم بوده میدونید که ست سال سال گذشت اولین ادبای جامعه اسلام در ادبیات عرب شدن ایرانی ها که زبان مادریشون نبود سی به وقتی میگن کتاب الکتاب خب کتاب یعنی هر کتابی بله اما وقتی میگن در ادبیات عرب الکتاب فقط یک کتاب تو ذهن میاد اونم کتاب صیبه بیه در نحو البته صیبه بیه یه از الی شیرازی حالا بعضیا دوست دارن که ایشان را هم اصفهانی بدانند الاخره ایشش رو شاید عرض به خدمتتون طقرانی اصفهانی از اونها نیست که لامیه گفته هست یعنی اشعار عرب به اون هر قصائد به اون حرف آخرش اسم گذاری میشه اگه حرف عین بشم میشه عینیه با باشه میشه باییه این حرف آخرش لام لامیه گفته از اون طرف در کلام عرب از اون قصائد معروف عرب چند قصیده معروف تاریخ عرب یکی قصیده لامیه شمفرایه که از افتخارات عربه ص اون میگه اقیم و بنی اممی متي ظهوركم و اني الا قوم من سبوكم فعملو اینطوری شروع میکنه اون شانه این طهرایی اصفهانی گفته است اصالت الری صونتنی انا الختلی بهلیه تلفان صونتنی لدن اتلی خوش فکری همیشه منو از لغزش ها حفظ کرده است و آراستگی فضل بالاترین زینت من بوده است نه زینت دیگر اینطوری شروع میکنه این زیباست میرسه به اینجا که قازل وفا و فازل قدر چشمه های وفا فرو رفته است نیرنگ و مکر جوشیده است در جامعه قازل وفا و فازل قدر و تسعت مسافت الخلف بین القول و لا عملي ما فاصله ها فاصله شده است بین قول و عمل مردم کی میگه این رو قرن ششم مسافه الحلف بین القول و از بدترین فاصله ها فاصله بین گفتار فاصله بین گفتار و رفتار است یا ایها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون کلیه پروردگار اون طرفش اگر این فاصله برداشته شد و اینها منطبق هم شدن میشه صدیق و صدیقه فرمود سیما هم سیما صدیقیم نظرده هایم که نشانه شناخت اینها صدیق بودنشونه دو سبومین ویژگی و کلام هم کلام و از اون جماعتی هستن که در کلام کلام ابرار را دارن توفیقی بود یه بحثی داشتم من در جمع قرآنیه اسفحان یکشنبه موضوع این بحثم ویژگی های کلام در قرآن بود که اصلا اون هنجار سخنگوی قرآنی و مسلمانی چیست و قل لعبادی اللغینا آمنو یقول لطیهی احسن پنجوسه اصرا به بندگان مؤمن من بگو پیام براگر میخوان حرف بزنن باید کلامشون احسن باشه کلام احسن چیه چه ویجگی هایی دارد؟ 5 تا دا ویژگی در قرآن داریم که اگر این‌ها بود قول و کلام ما مشهصن و اعلان نه و شایسته مسلمان و تربیت شده قرآن و مکتب پیامبر نیست. از مهم‌ترین های شخصیت ما کلام ماست. همینجا در سخنان امیرالمؤمنین در منشور تربیت نامه 31 مفصل در این جهت صحبت کردیم خدمت دوستان. بالاخره این یک محملتای است. یک بچه معرفی انسان است. و این ابراز درونی انسان با کلام تا دلی آتش نگیرد حرف سوزی نخیزد حال ما خواهی اگر از گفته ما جستجو کن این معرفی دقیق کلام ویژگی های اون سبکه اون مدل اون و اون حتی آهنگ اون زربا آهنگ و کلمات اون همه اینها معرفه حسن قالب، حسن محتوا حسن تنین. این همه در کلام مسلمانی مطقهه در امام فرمود کلام هم کلام ابرار من از اونهایی هستم که کلام اینها کلام ابراره حرف زدن و سخن اینها ابراره هست ابرار که ابرار جمع بار بار بار از ماده بر میاد بر یعنی احسان فراغی اینا همونها هستن که خدا در قرآن چی میگه در توصیفشون کلام ان کتاب بلعبراره في الاليين جماع درا كما کتاب مرغوم. مرقوم اا رو خدا بالاترین مقامات ممکنه بهش رو به ابرار اختصاص میدهد یعنی کسانی که در احسان یه بُعد دو بود، سه بود ندارن که از ابعاد دیگر غافل شده باشند تو تمام ابعاد نیکی و شخصیتشون متوازن رشد پیدا در ارتباط با خدا سلاتشون در ارتباط با خلق زکاتشون در حقوق اقتصادی در مسائل عبادی در مسائل اجتماعی در حالات فردی در رفتار در گفتار در کلام در خلق یه جامعیت در وجودشون پیدا میشه ایران چند ابرار کلام هم کلام عبرار. از اونهایی هستم که گفتنشون به شیوه و مدل سوحنگفتن ابرار است چهارم امار و لیل امار و لیل امار آمر آبادان کننده اون میشه امار اینها کسانی هستند که آباد کننده شبند شبهای آبادانی دارند اینها خیلی آباد شبشون خب میدونید بالاخره دیگه در منطقه لاهیون و موحدان شب ویژگی های خاص خودش رو دارند والذین اگه بیتون در رب همسا و قیاما یعنی اون فرصت های خلوت شب وقتی دیگه همه چشم ها خوابید همه درها بسته شد و تمام قفلت ها آمد و همه رفتند دیگه اگر شب نشینی داشتن اگه هر داشتن تموم شد اگر هر کاری داشتن تموم شد دیگه اون انتها که همه خوص بیدن تازه شروع میشه فرصت های برای گروه خاصی تمام درمه که بسته میشه در به اون گشوده میشه تمام چشم ها که بسته میشه چشم های دوخته که به جانان گشوده میشه در نزد ما و میشه و به لعظهارهم یستغفرون اینها تو سهر گاهی ابیات رو خوندیم خدمت دوستان من خودم تعلق زیادی دارم به این ابیات که گاهی تکرار هم کردم چنین شنیدم که لطف یزدان به روی جوینده در نبندد دری که بکشاید از فضیلت بر رحل ارفان دگر نبندد چنین شنیدم که هر که شبها نظر ز فیض سهر نبندد ملک ز کارش گره گشاید فلک به چینش کمر نبندد چه می این حال و شب با انسان؟ اینها شب وجودشون را آباد می کنند روز یا ایها المزمری پیامبر قم لیل الا قلینا اولایشون یه بخشی از شب بعد می فرماید این ناشه این ناشه تلیل هیه اشهد دووت انوغ و مقیلا این جنب و شبه که تو رو پا بر جام می کند و این نلکف نهار سبحان طویلا بعد تحمل داری که روز را بکشی و بتونی به وضع افعمل کنی توان رو کی میگیری شب، همون طور که از جهت جسمی سی درصد که بدن ما در شب و در خواب میاد پایین یعنی بدن به قول این دوستان ما یه ریسرچ میشه یه دیگه کاملا آماده میشه باز مجدد روزو شروع کنه با خواب همون طور از جهت روحی هم همینطوره در نزد الهی خدا اینا عمار و لیل شب آباد میکنن این روحشون رو شبشون رو آباد میکنن ویژگی بعد من دیگه شماراشو نمیگم ویژگی بعد و منار و از کسانی هستم که اینا منار نهارند گاهی گفتیم منار اسم مکان است یعنی محل نار محل آتش خب بعد شما یک حیم آخرش میگذارید گاهی میگید چی؟ مناره بعد میگید چند نوبت از مناره پرخروش نام احمد با علی آیت به گوش روز و شب گویم به آواز جلی اکفیانی یا محمد یا علی فرج. مناره است که ترجمه فارسی میکنید مناره یعنی محل نار دسته در فارسی یعنی جایگاه گل در فارسی یعنی آتش گل دسته میشه محل آتش میشه مناره خب مناره چی بوده خاصیتش؟ مناره معزنه نبوده ها اشتباه نشه مناره نمی ساختن به رعزان گفتن بلکه مناره در گذشته کاربردش این بوده که محلی بوده از ارتفاعی که آتشی برون روشن میکردند که شبانگاهان رحکم راه رو پیدا کنن بیان به سامانی برسن هدایتی پیدا کنند ابن سبیل. این کاربردش این بوده مناره و گلسته به این معنا بوده در حقیقت فرمود از اون جماعتی که منار نهارند پس یعنی چی؟ یعنی اون کسانی که در روز نشانه و علمی هستند و مناره و گلدستهی هستند که راه را به دیگران نشان میدهند. دهن گمشدگان وادی را به منزل و محصود می و راهنمون میکنند. کنن متمسکون به حبل القرآن بیجگیگ بعدی این شو چندومی؟ این ششومیه؟ ششومی متمسکون به حبل القرآن اینها کسانی هستند که همسوک به حمل قرآن دارن از اونها هستم من ببینید همسوک م سین کاف کف به معنای نگهداری است به اون قزایی که خیلی قبه و بنیه داره و انسان رو خوب حفظ میکنه یه چیزی نوشیجان جان تا یک ساعت بعد گرسنه دیگه کاروری نداشتین این غذا چیزی نداد به شما این میده رو پر کرد حج رو پر کرد اما گاهی قزایی که حجمیه ما تو اسطلاح فارسی محلی گفت میگیم این قضا خیلی چی داشتی؟ گیر داشت این قضا گیر داشت من هنوز چند ست شده گرست نیست نشدم این حالت رو دارم به این قضا در کلام عرب میگن مسکه مسکه نیم سین کافه این خوب چیزی که نگه میدارن و اینو تو فارسی هم همین کلمه رو در منطقی ما من نمیدارم در اصفهان. به کره مسکه می گفتن روستایی های خراسان به کره مسکه می گن از همون مسکه خوب نگه می داره. این خوب بالاخر روغن اینچنینی اون کره ناب مثلا طلم زده اونچنانی که به دست اومده خوب این خیلی حالت خاصی داره. این کلبه میاد توی استعمالات خیلی زیبا میشه میاد به باب افعال امساک وقتی خودش رو کسی میتونه حفظ کنه و کامل نگه داره، اسم این عمل میشه چی؟ میشه امساک. 15 ساعت گذشته 16 ساعت گذاشته یه وقتی من از بخدمتون جایی بودم، کانادا بودم، ماه رمزان. رمزان روزداری با 19 ساعت شروع کردیم ما روزها رو. 19 ساعت روزه ما بود ماه رمضان. خب با اون کار نمیدانم 9 تا 5 و و فلان و اون وضعیت اونجوری سنگین کار کلاقی حالا آره میخوای 19 ساعت ساعت روزه بگیری خیلی باید امساک کنی باید خودت رو خیلی نگهداری این چه امساک میره به باب تفعل میشه تمسک خوب دقت کنی وقتی شدت پیدا میکنه میشه تمسک متمسک یعنی کسی که محکم یه چیز رو چار کرده قوی یا جدی نگه داشته از تو دستش این میشه متمسک این میتار کن فیکومو ثبلین کتاب الله و اطرتی ما این تمسکتم به ما لن تزلو من دو چیز میان شما نهادم کتاب خدا و سنت خودم و اطرت خودم را کتاب به خدا و به رو به این شما گذاردم تا زمانی که شما تمسک به اینها دارید متم... یعنی دقیقاً مکم اینها رو گرفتید و خودتون رو به اینها چه کردید؟ متصل کردید هرگز گمراه نمیشید و تا قیام قیامت اینها از هم جدا نمیشن امیرون تو بود متمسکون به حبل القرآن خواهش میکنم دقت کنید ازیزان من از اونایی هستم که به تمام وجود خودم رو به چیش چست موندم و متصل کردم؟ به قرآن southwest شبم رو روزم رو زنم و فرزندم رو اقتصادم رو سیاستم و, و من رو متمسک به قرآنم متمسک بودن به قرآن چیزیست؟ آشنا بودن با قرآن چیزیست؟ آقیق قرآن بودن چیزیست؟ طالی قرآن بودن چیزیست؟ اونی که امام فهمت متمسک به قرآن اونی که پیانبر می تمسک به قرآن چنگ زدن به ریسمانی که یه طرفش حبل قران یه طرفش خدا یه طرفش من گرفتم این رو دارم نردمان آسمان از این کلام هر که از آن برشود آید به مام نهی به بوم چرخ کان اخذر بود بل به بام این کس فلنک برتر بود. دارم میرم بالا دارم میرم بالا با حبل قرآن متمسکون به حبل هفت یحیون سنن الله و سنن رسوله من از کسانی هستم که تمام تلاشش رو داره میکنه که احیا کند و زنده کند سنت های الهی را و سنت های رسول خدا را سنت به معنای روش روش ها و قوانین میشه سنت قوانین و سنت هایی که خدا تو وجود قرار داده من سعی می کنم سنت احسان است سنت عدالت است سنت سعی و نتیجه است و و و تمام سنت هایی که خدا تو وجود قرار داده سعی می کنم سنت های الهی را زنده کنم سنت های پیامبر را زنده کنم سنت های پیانبر را زنده کنم گفت که بالاخره تو به پیغمبر چه میمانی بگو شیر را به چه بدو ماند امون. تو به پیغمبر چه میمانی بگو اون سنت های کجاست در بین ما سنت های خانوادگی سنت رفتار پیامبر با همسرانش با فرزندانش کجاست بین ما سنت اقتصادی پیامبر کجاست سنن نبی سنن نبی اصلا ما کتاب های مستقلی داریم با عنوان چی؟ سنن نبی تو تمام اوضاع های زندگیم اینها کجاست کجا این سنت یعنی رفش های متعارف پیامل در فکر عقیده عمل در سر و سر زندگی که ما معموریم با آن که و این لکم فی رسول الله عصفتون حسنا این اصور رو بگیریم به سنت رو بریم جلو فهمود من از کسانی هستم که سنت های خدا و سنت های پیانبر را زنده میکنم. نمیذارم نمیگذارم سنت های وجود روش های وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی از بیان برود و من منصوخ بشه لا يستكبرونه ویژگی بعدی خب حالا اینجا یک مجموعه‌ای از صفات رو فرمودن که اینها بیشتر جنبه اثباتی داشت. حالا یه چند تا جنبه سلبی داره. از کسانی هستم که اینها سنت‌های خدا و پیامبر رو زنده می‌کنن. تمسک به حبل قرآن دارن. در روز نشانه هدایتن. اینقدر محسرن در جامعه نمیگذارن مردم به کجراه برن وجود اینها راهنمای اجتماعی است برای مردم در زمینه مختلف شبشون آبادان کلامشون کلام عبران سیمای اینها سیمای صدیقین نشانه های صدیقین بدون هیچ ملامت پذیری و کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن منم که شغلی شهرم بهش عشق مرزیدن منم که دیدن نیالوده هم به دیدن وفاق و, و, و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن اینها گفته شد حالا یه چند تا سن به شماد رحم کندم ایرون مؤمنین من از کسانی هستم که لای از تکبرون روز توضیح دادیم که تکبر استکبار از هم که استکبار نیست وجودم یعنی هرگز نمیخوام برتری خودم به دیگران ثابت کنم در صدر این نیست که بخواهم خودم رو بر دیگران اثبات کنم و دیگران رو زیر چتر تسلط خودم بیارم خوی استکبار نیست در ما لا یستکبرون و لا یعلون بعدی و از اونهایی که علوو و زیادت تقیانی میخواهند زیاد خواهی اتهاقیانه دارند و تقیانی دارند از آنها نیستیم آیه 83 سوره مبارکه قصص رو اول بحث دیروز خوندیم تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون اولو الفن ولا فسادا و این جهان آخرت رو با تمام عرض طورش برای کسایی قرار دادیم که اینها اراده ببینید لا یوریدونه نه لا یفعلونه اراده فساد و علو نمی کنن اراده فساد و علو نمی کنن نه اینکه انجام نمیدن لا یوریدونه لا یعلون یازده و لا یغلونه من از کسانی هستم که غل و غل در وجود اینها نیست ببینید این کتر رو که ملازمی فهموید لباس دوستان عزیز این یه رویه داره که پارچه یه اصلی اینه یک آستری هم داره که بالاخره این آستر زریف داخلش رو به کار میبرن بین این آستر و بین این رویه یه چیزی رو این دوست خیاط محترم ما قرار داده یه بین این یه لایهی قرار داده است آستر روی لایه فاصله بین این دوست به لایه در کلام عرب میگن غلاله غلاله غل از ماده غلاله میاد یعنی هنگامی که متأسفانه بین انسان و بین حقیقت یه چیزی میاد فاصله میشه به انسان یه دقلی رو پیش میگیره غلاوغی رو پیش میگیرد. اینو میگم من من از کسانی نیستم که بگذارم بین من و بین عمل و حقیقت بین من و صداقت چیزی فاصله بیندازد نیرنگی مکری هیله‌ای به این معنای منفی او خیر با کسی من غلاوغش ندارم لا غلونه بعدی. و لا يفسدونم من از قوم و جماعتی هستم که فساد در کار اینها نیست اینها فساد نیستن بلکه اهل چی فساد لخته مقابل صلاح سلا صلها ها دیشب گفتیم ولقد کتبنا فزبود من بعد ذکر انده ارز یرفها عبادی از صادحون عدی مسلم ثغتیه رو دیشب تفسیرش گفتیم آیه 150 سوره مبارکه انبیا خدمت دوستان مسلم وقت این کردیم همان گونه که در زبور نوشتیم در تورات موسا و ذکر نوشتیم قبل از زبور ان لا ارز یرفه دماضی زمین رو بندگان صالح ما به میراس میبرن صلاحیت نقطه مقابل فساد حالا اگر خدا کسی رو صالح دانست یعنی صالح به تمام معنا و اسمت فرمود من از جماعتی هستم که اهل فساد نیستم حالا دوستان عزیز ببینید فساد ممکنه فساد فکری باشه ممکنه فساد قولی باشه ممکنه فساد تباهی در عمل و در گفتار و در باور و عقیده باشه حالا این فساد گاه ممکنه به دیگران هم تصدیب پیدا میکنه. میشه چی؟ میشه مفسد. میشه فاسده؟ مفسد. بعد میشه سالهه؟ مسله نقطه ای مقابلش. فهمود من از کسانی نیستم که فساد در کامرون ها باشم. این شد یازده تا. بیشگی یه پایانی عجیبه. من دیگه این واقعا فهمیم. البته همه اینها حالا من میگم بر میگردیم یه مرور کلی میکنیم با هم اما این ویژگی آخری دیگه امام مثل این که دیگه یه مقدار اون های انسوئی رو نشان پرده ها رو به کناری میزنم قلوب هم قلوب هم فی و اجساد هم فل الامل من از کسانی هستم که قلوب کم در استعمالات و اونده قرآن و حدیث قلب یعنی چی؟ یعنی جان و روح من از کسانی هستم که جان و روح آنان در جنان است. جنان جنه رضوان الهی و بهشت من از کسانی هم نه اینکه که بعد میخوام برم تو بهشت من از کسانی هم که علا آن جان و روح اونها کجا از اونهاییست که از لفت الجنه تا متقین غیر بعید ازا ما توعدون لکل عذاب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاوه به قلب منیم ادخلو سلام من از اونهایی هستم اینو در سوری ماری که من و فستم گفتم ببینید ما گمان میکنیم که اتقیا رو خدا به بهش نزدیکشون می کند نه ازلفت جمع للمتقین بهشت به متقین نزدیک می شود. نه متقین به بهشت. بهشت مشتاق متقین است. بیش از آن که متقین مشتاق بهشت باشن. این نگاه قرآنه. من از کسانی هستم که جان اونها و روح اونها با اون قلب سلیم علا آن در بهشت است نه فردا. من الان در حال هوایی بهشتم. اگر دوستان فرصت کنند و لطف بفرمایند و سنگین بر اونها نباشد این کتاب آرفانه ما رو بخونید. کتاب آرفانه. از مجموعه درس های نحجابلاغه فکر کنم پنجمی باشه یا ششمی است. این دفتر پنجمه یا دفتر شما آرفانه. شرح خطبه دیویست و دویه. من ندیدم البته به فهم و استعداد و توان علمی خودم عرض می میکنم من ندیدم متنی در اسلام و در غیر اسلام مانند خطبه 222 امام علی در گشودن پردهها و نشان دادن عرفان حقیقی خداوند بندگانی دارد ناجاهم خدا با اینها مناجات میکنند نه اینها با خدا مناجات کنند فیزات و قوله هم. نه تو مهرام و مسجد در عمق خدا با اینها مناجات میکنند بندگانی که نگاه میکنند میبینند تا آینده یا فقر رو میبینند یه چیزای امیر و مومنین اونجا میگن و یه پرده هایی رو بر میدارن که واقعا دیگه اون عوجه عرفان ناب الهی و الوین به نمایش گذارده میشه در این خطبه دیویست و بیست دو اینا چی هم بازد؟ الله ان الله سبحانه و تعالی جهال ذکر جلاو اندل قلوب خداوند ذکر جلاو و تجلی دهنده دلهای اینها قرار داده است و شروع میکنن اینطور طور رمیر در این خطبه من از کسانیم که قلب و روحشون الاغان توی جنت است و جنان است. اما اجسادشون بین ماست در میان انسانها ها فلعمل مشغول جدی ترین تلاش ها و کوشش ها اینا هستند. مرد اقتصاد هم هستند مرد سیاست هم هستند مرد تقوا هم هستند اصفه اخلاق هم هستند اینا تو همه چیز در میدان عمل هرون حوضه ای که باید برن کم ندارن از دیگران جلودان اما روحشون و قلبشون جای دیگری چطور میشه این مقامات رو در کرد اینا روحشون به یه جاییست دری که هور به هشتی رو بود و یغما کرد که یه اتفاق کند بر بطال یقمایی اینا روحشون یه چیزهایی داره میبینه الان به یه یقینی رسیده است که چنه الان در بهشت باز در خطبه یه خطبه ببرید جلوتر از این یعنی میشه خطبه همین همینجا خدمت دوستان پیش 7 سال قبل گفتیم مشتاقی و محجوری فرمود اینها کسانی هست که اینا وقتی آیات قرآن رو تلاوت می کنند می رسند با آیات رحمت الهی اینها در وجودشون و در گناهاشون نسیم بهشت رو لمس می کنند و وقتی میرسن دعضا به الهی در تمام وجودشون زبانه ی آتش رو لنز میکنن هم فل هاشون در بشت البته گمان نکنید ازیزان امیر المومی خب طبعا و اجساد هم فل این ویژگی خب مسلم من قومن اون قوم ابتداعا خود علی و فرزندان علی هستن اما این این حسار به این بزرگواران نداره پشت سرشون وقتی به دستان میگفتم که از تنلامه جنفری میفرمودن که رفتیم و استاد استادو خصوصی درس میگرفتم این حال عجیبیه این درس خصوصی که گاه چون من این حجر و برو با بعضی از عازم و بزرگان هنساتیدم داشتم میرفتم سال شست و سال و خدمت اون سید و حالم جلیل بین نظیر دیار خراسان میرفتم خدمتشون میگفتن منو به اسم کوچک صدا میزدند میگفتن بابا علی آقا حال ندارم امروز برو میرفتم فردا می اومدم میگفتن خب بیا میرفتم باز که رو باز می کردن بیشتر میخوندن تا می خوندم بس امروز باز چهل دی که می‌خوندن یه حال و هوای عجیبی است تو این ارتباطی که اینطوری بین معلم‌ها شاگردها برقرار میشه تو پس از اشتهای علمی اینا چیز غریبی است. از طلام میگفتن می‌رفتم خدمت اون بزرگ رفتم در رکوبیدم تو نجف یه نگاهی کردم به من گفتن آقا درس تعطیل است. گفتم ما شما اینجایید ما اینجا این درس تعطیل است چی؟ گفتم آقا درس نمیفرمایید؟ آمدن آقا رفته است. آقا رفته است. نفهمیدم چی دیدم دیگه حالش دیگه از گیدم خدا هستشون دیدم فردا بلنگوهای گل دسته صحنه امیرالمؤمنین در نجف اعلام کرد. استاد من دیدم داره خبر میده صدای مصیبت میکشن یه چیز مصیبتی میکشیدن؟ صدای مصیبت دارن میکشن. بدران اعلام میکنن مردم بیاد بره تشییع جنازه فلانی قبل از نماز زور آقا آقا جان رفته است چی رفته قلوب هم فنجنا و اجساد هم چی خدا به ما داده عزیزان چی قدرتی به این انسان داده که میتونه عوالم رو یک به یک کهی کنن و پشت سر ببذارد این رو و اینی لمن قوم من از جماعتی هستم که هیچ ملامتی در وجود ایشان اثر نمی کند نشانه ایشان نشانه صدیقین چلام ایشان کلام ابرار آباد کنندگان جان در شب منار و نشانه های هدایت روز چهنگ زده به ریسمان قرآن زنده کننده سنت های خدا و رسول هیچ استکباری در وجودشون نیست هیچ علو و زیاده خواهی ندارند هیچ غلاغشی بین اینها و مردمان و خدا نیست لا یفسدون هرگز به تباهی و فساد میل ندارند علبه ایشان در جنان و اجساد ایشان در عمل است. من قبل ازی که هر چیزی بگم اجازه بدید از همین حال و از همین لحظات معنوی اول استفاده بکنیم و از هر کرانه تیر دعا کردم روان باشد کزان میانه یکی کارگرد شد و به زلال سخنان علی و به اثر کلام ولی زلجلال و به عظمت شکو مندی شخصیت و روح قدسی همیر المؤمنین به آیات و هد توفید اولا فهم سپس به کار بستن و اتصاف به این دوازده فیجگی رو به صدیقی طاهره قسم نصیب و روزی ما قرار بده و ما رو از آنچه چه گفتیم بی نصیب و بی مگردان